ای سبیل تراشیدن خوب است نه سبیل اول سبیلها رو کوتاه کنید سبیل باید کوتاه بشه و ریشه ها رو جراس کنید زیرا که این شعار انبیاء هست همین انبیاء ریش داشتی تو قرآن خدا بیان می کنید که یا لا تاخذ بیلیه ایتی و لا گره ایسی حضرت هارو رایتی ہے خیلی علیه سراط و سران خیلی اصوانی غازبان خیلی گرفت تو گیر کو ابن بنام الله تا خود بله براستی ولاغ راستی نگاه کلیشامون نگیزه جلو مردمانو اینجا مسخره نکن بزای نهارو ریش همی انبیاء علیه مصطفی و السلام ریش داشتند حالا جالب اینه که در علم پزشکی ریش داره همت بسیار بزرگی هست برای سلامتی بدن برای سلامتی بدن بسیار مهمم و برای اینکه عزیز سوالی کابلام آمد از دودین زالین ریش هار نتراشید دودین زال نمیشید. ایک از بیماری‌ها زرد ریش هست خود ریش انسان عقل می‌کنه خود این علم پزشکی داره ثابت می‌کنه که میگه این برای خود این قوت بدن بسیار مفید حالا ببینید که روهر نگاه کنید اینا تیر نشان روشو نگاه کنید چقدر تاثیرگذار هستی هر حال اینو تایید کردن که برای خود صحت خیلی ضرر داره پس ریش‌ها باید نگاه داشته بشن حالا نگاه کنید یه نقطه برشما بگم ما تنها دوو زنده است قیمتون بارنش بتراش خوشگل میشینید ایواب میشینید چارت دختر شما رو میبینه عاشر میسن دیگه چی دارید توی نشا قوتا میکنی اگر هدف دختران هستند دو دیوانگان هسته بخاطر این نگام میداریم پس میران یک وا ویلا هست مسیو با خطرناکتر هست وقتی که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم جبرائیل امین وقتی که وحی را آورد نبی کریم بسیار استراش گرفت و ترسید و از وقت از قاره را پایینون باف فره پرمودن که زمیلونی زمیلونی دسترویی دسترویی برویم بر تو بیان دادی میترسم بر اولین بار چه رو او دیدی بود بابا ما با داخل قبر میریم با من کرنه کیرونجا مقابل میشه با جهرای وحشتناک اونجا باش کار بکوریم و خلاف سنت باشیم خلاف اونا برین اونجا باید جواب بدیم نبی کریم بعدین چه برای ایرانیان ترسید ابر اولین بار تو قعرض وقتی گزارشی بشیم اونجا وقتی میپرسن که در مورد این آقا چی میگی نبی کریم بعض بعضی شکل مثالی نبی کریم آورده میشه در مورد این آقا چی میگی تو چه داری با چه داری شبیم آقا بودیم و شبیم آقا لیستین دیگه جواب ما چی هست ترس بسیار عجیبی و اونجا پراخات گره رو و نگاهی داریdish خیلی مهم هست بعد این است که دمورد تراشیدن سبیل آیا چیز خوب یا خوب نیست برادران تبلیغی میتراشن، حتی اونجا دیدن که میتراشن میپرشتن، خوب از خوب نیست. اول سبیل باید کوتاه بشه حد اقل این است که باید لبها ظاهر بشن، لبها. بعد چلید کوتاه بشه تا میتوانیم. چون چندین لفظ حدیث آمده، جز آمده، قصد آمده، احفا آمده، یعنی مبالغی کردن در گرفتن سبیل. اما سوالیت تراشیدن جای جایز جا تراشدن سویر جائز ہے فقط در نظر امام مالک بھی جایز نیست که مصلح هست. اما ای حدیثی معداریم که لفظ حال آمده، حال آمده که انها رو تراشدنم آمد در حدیثی